خداوند متعال همه شما را محفوظ بداره پروردگارا و محمد و آل محمد ارواح طیبه شهدای عزیز جنگ تحمیلی را با اولیاعت محشهور بفرما پروردگارا یاد این عزیزان و فداکاران را در های ما و در متن تاریخ ما مندگار بدار فروردگارا ما را در مقابل دشمنان، در مقابل دشمنی ها، در مقابل خباست ها با همان روحیه‌ای که مطلوب و مرزی پیغمبر اکرم و امی هداست با همون روحیه تا آخر نگه بدار را ملت ایران را بر دشمنانش پیروز کن روح متحر امام بزرگوار را با اولیاش اش محشور کن